کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده خرچنگ طلایی روزی روزگاری ماهیگیری با همسر و سفرزندش زندگی میکرد. او هر روز صبح به ماهیگیری میرفت و همه ماهیهایی را که میگرفت به پادشاه میفروخت. یه روز در میون ماهیهایی که گرفته بود یه خرچنگ طلایی هم وجود داشت. وقتی به خانه برگشت تمام ماهیها را داخل یه ظرف بزرگ ریخت اما خرچنگ را از اونها جدا کرد. چون درخشش زیبایی داشت و اون را روی بالاترین قفسه کمت گذاشت یه روز همسر پیر ماهیگیر مشغول تمیز کردن ها بود و دامن بلند پیراهنش را گره زده بود به همین خاطر قسمتی از پاهایش معلوم بود ناگهان صدایی شنید که میگفت پایین بیانداز دامن تو پایین بنداز اینطوری پاهات معلوم میشه زن با تعجب چرخید و چشمش به اون موجود کوچک یعنی خرچنگ طلایی افتاد. پیرزن گفت: "چی؟ تو میتونی حرف بزنی؟ تو خرچنگ مسخره حرف میزنی؟ پیرزن که از حرف‌های جونور خوشش نیومده بود، رو برداشت و داخل یه ظرف گذاشت. وقتی موقعی گیر به خونه برگشت، اونها مشغول شام کردن بودند. صدای خرچنگ کوچک به گوششون رسید که گفت: به منم غذا بدین اونو خیلی تعجب کردند اما کمی خوردنی به او دادند وقتی پیرمرد میخواست ظرف خالی غذای خرچنگ رو برداره دید ظرف پر از طلاه این اتفاق هر روز تکرار شد و به این ترتیب مرد خیلی از خرچنگ خوشش اومد یه روز خرچنگ به زن ماهیگیر گفت پیش پادشاه برو و به او بگو من میخوام با دختر کوچیکش ازدواج کنم پیرزن اطاعت کرد و پیغام خرچنگ را به گوش پادشاه رسوند. پادشاه از تصور ازدواج خرچنگ با دخترش خندش گرفت، اما پیشنهاد او را رد نکرد چون او خیلی محتاط بود و فکر کرد شاید خرچنگ یک شاهزاده باشه که تغییر قیافه داده. بنابر این به همسر ماهیگیر گفت: پیرزن، برو از طرف من به خرچنگ بگو من دخترم را به شرطی به او میدم که تا فردا یک دیوار جلوی قلعه من بسازه این دیوار باید از برج شهر بلندتر باشه و روی اون تمام گلهای دنیا رشد کند همسر ماهی گیر به خونه رفت و شرط پادشاه را به خرچنگ گفت خرچنگ یک عصای طلایی به او داد و گفت برو این عصا را در جایی که پادشاه نشون داد سه مرتبه به زمین بزن فردا صبح دیوار آنجا خواهد بود پیرزن قبول کرد و از خونه بیرون رفت صبح روز بعد وقتی پادشاه بیدار شد فکر میکنید چه چیزی دید دیوار بلندی جلوی چشمش ظاهر شد درست با همان مشخصاتی که گفته بود بعد پیرزن نزد پادشاه رفت و گفت دستور شما تمام و کمال اجرا شد پادشاه گفت بله درسته اما من دخترم رو به خرچنگ نمیدم مگر اینکه جلوی قصر من یک باغ بسازه. که در اون 3 فواره باشه، اولی به جای آب، تلا، دومی، دو الماس و سومی سو بریون داشته باشه. پیرزن مجبور شد سه بار دیگر اسار را به زمین بکوبه. صبح روز بعد باغ آماده بود. پادشاه این بار رضایت داد و قرار جشن عروسی برای روز بعد گذاشته شد. خرشنگ به ماهیگیر گفت: حالا این ااسار و بردار با آن به کوه برو. ضربه بزن. یک مرد سیاه ظاهر میشه و از تو میپرسه: "چه میخوایی؟ به او بگو: "سرورت پادشاه منو فرستاده تا به تو بگم که لباس طلایی را که مثل خورشید است برش بفرستی." در زمین بگو اون لباس های زنانه را که با تکه های طلا و سنگ های قیمتی مثل دشت پر از گل شده را به تو بده. اون وقت هر دوی را برای من بیار. در زمین یه بالش طلایی هم برام بیاد. پیر مرد همه دستورات رو اجرا کرد. وقتی اون لباس های گرانبه رو آورد، خرچنگ لباس طلایی رو پوشید و بعد روی بالش طلا نشست و ماهیگیر او رو به قصر برد. و خرچنگ لباس دوم رو به عروس هدیه داد. جشت برگزار شد. وقتی عروس و داماد با هم تنها شدن، خرچنگ داستان زندگی خود رو برای همسرش تعریف کرد. براش گفت براش که او پسر بزرگترین پادشاه جهان است و یک روز اسیر ترس میشد که روزها او را به شکل خرچنگ و شبها به شکل یک مرد در میاره در ذهن او میتونست هر وقت دلش بخواد تبدیل به اقاب بشه کمی بعد از گفتن این حرفها او بدنشو تکون داد و فورا تبدیل به یه مرد جوان و خوش سیمایی شد اما صبح روز بعد او دوباره به شکل خرچنگ در اومد این اتفاق هر روز تکرار میشد. اما احترامی که شازده خانم برای خرچنگ قائل بود و رفتار ای که با او داشت باعث تعجب خاندان سلطنتی می شد. اونو احساس میکردند راضی در میونه اما هرچه فضولی کردند چیزی دستگیرشون نشد. یه سال گذشت و شازده خانم صاحب پسری به نام بنجامین شد. اما این موضوع برای همسر شاه خیلی عجیب بود. بنابراین از شاه خواهش کرد از دخترشون بپرسه آیا دلش نمیخواد به جای خرچنگ شوهر دیگه ای داشته باشه؟ وقتی این سؤال رو از دختر پرسیدن جواب داد من با خرچنگ ازدواج کردم و تا آخر عمر همسر او باقی خواهم ماند پادشاه به او گفت من میخوام به افتخار تو یک مسابقه ترتیب بدم بعد از همه شاهزاده های دنیا برای شرکت در این مسابقه دعوت خواهم کرد اگر یکی از آنها خوشت اومد میتونی با اونها ازدواج کنی همان شب شهازات خانم ماجره را برای خرچنگ تعریف کرد. خرچنگ به او گفت این اصار را بگیر جلوی در باغ برو و با آن دو ضربه به در بزن. مرد سیاهی ظاهر میشه و به تو میگه چرا احضارم کردی و چی میخوای؟ به او بگو پادشاه بزرگ سرورت منو فرستاده تا به تو بگم به ذره طلایی و اسب و سیب نقریش احتیاج داری. اونا رو بگیر و برام بیار. شاهزاده خانم اطاعت کرد و چیزهایی را که خواسته بود براش آورد. شب بعد، شاهزاده خود را برای مسابقه آماده کرد و قبل از اینکه بیرون بره به همسرش گفت: یادت باشه وقتی منو دیدی به کسی نگی که من همون خرچنگم. چون اگه موضوع فاش بشه، دشمن منو خواهد کشت. با خودت پشت پنجره بنشین و من خودم به اونجا میرسونم و سیب نقرهای رو بهت میدم. اون بگید اما اگه کسی از تو پرسید من کی هستم بگو نمیدونم بعد از گفتن این حرفها او با همسرش خداحافظی کرد یه بار دیگه سفارش های مهم را تکرار کرد و رفت شهزاد خانم همراه خواهرش پشت پنجره نشست و به تماشای مسابقه مشغول شد همان موقع شوهرش از راه رسید و سیب را به او داد زن سیب رو گرفت و به اتاقش برد و کمی بعد شوهرش هم به اونجا برگشت اما پدر شاهزادهخانوم از اینکه دخترش به هیچیک از شاهزاده ها توجه نکرد خیلی متعجب شد بنابراین یک مسابقه دیگه ترتیب داد خرچنگ همون دستورات قبلی رو برای همسرش تکرار کرد فقط این بار سیبی که مرد سیابه او داد از طلا بود اما قبل از رفتن شاهزاده به همسرش گفت من مطمئنم که تو امروز مرا لو خواهی داد زن قسم خورد به کسی نگه که اون کیه شاهزاده یه بار دیگه هشدارهای لازم را داد و رفت شب وقتی خانم همراه خواهر و مادرش پشت پنجره نشسته بود ناگهان شاهزاده با اسبش چارنل به اون طرف اومد و سیب طلا را به او داد با دیدن این صحنه مادر از جا پرید لبهایش را به گوش دخترش نزدیک کرد و گفت احمق حتی این شاهزاده هم توجه تو را جلب نکرد خانم ترسید و ناگهان از در رفت و گفت او خود خرچنگ بود مادر خیلی عصبانی شد که چرا این موضوع رو زودتر نفهمیده او به اتاق دخترش دوید و پوست خرچنگ را رو که روی زمین افتاده بود برداشت و توی آتش انداخ شازادته خانم بیچاره شروع کرد به گریه و زاری اما فایده ای نداشت شوهرش دیگه برنگشت حالا بهتر از شازادته خانم را رها کنیم و سراغ بقیه های داستان برویم یک روز پیرمردی کنار رودخانهای نشست تا تک نانش را در آب خیس کند اما ناگهان سگی از آب بیرون پرید و نان را از دستش گرفت و فرار کرد پیرمرد دنبال حیوان دوید اما سگ کنار یک در رسید اونو هل داد و وارد شد پیرمرد هم دنبالش رفت او نتونست سگ را پیدا کنه اما متوجه شد بالای یک پلکان ایستاده از اون پایین رفت و وارد قصر باشکوی شد که در وسط آن تالار بزرگش میز خیلی بزرگی قرار داشت او پشت تابلوی بزرگی که در تالار قرار داشت پنهان شد تا ببینه چه اتفاقی میفته نزدیک ظهر صدای بلندی به گوش رسید که پیرمرد را حسابی ترسون وقتی کمی حالش جا اومد از پشت تابلو نگاه کرد و دید دوازده اقاب وارد قصر شدند و با دیدن این صحنه وحشتش چند برابر شد اقابها به طرف حوزی که وسطح آن یک فواره قرار داشت رفتند و خود را در آن شستند ناگهان دوازده اقاب تبدیل به دوازده جوان زیبا شدند اونا پشت میز نشستند و یکی از جوانهای لیوان نوشیدنی برداشت و گفت به سلامتی پدرم دیگری گفت به سلامتی مادرم و هرکس به نوبت جملهای به زبان آورد تا اینکه یکی از آنها گفت به سلامتی همسر عزیزم که تا هست شاد زندگی کند و نفرین بر مادر سنگ دلش که باعث شد پوست تلاییم بسوزه و بعد با گفتن این حرف بگری افتاد. جوان ها از پشت میز بلند شدند و به طرف فواره رفتند. دوباره تبدیل به اقاب شدند و پرواز کنان از آنجا رفتند. کمی بعد پیرمرد هم از قصر خارج شد و به طرف خانهاش رفت. مدتی گذشت. روزی پیرمرد شنید شازات خانم بیمار است و تنها چیزی که حالش رو بهتر می کنه شنیدن قصه جالب است. به قصر رفت و پس از گرفتن اجازه نزد شاهزاده خانم رفت. بعد پیرمرد اتفاقات عجیبی را که در قصر زیر زمینی دیده بود به صورت قصه برای شاهزاده خانم تعریف کرد. به محض اینکه قصه پیرمرد تمام شد، شاهزاده خانم پرسید که آیا میتونه دوباره قصر را پیدا کنه؟ پیرمرد جواب داد: بله، البته. زن از او خواست که فوراً با هم به اونجا برن. پیرمرد اطاعت کرد. وقتی به قصر رسیدن، هر دو پشت تابلو پنهان شدن پیرمرد از شاهزاده خانم خواست کاملا ساکت بمونه. کمی بعد عقاب‌ها وارد شدند و به شکل چند مرد جوان در اومدن شاهزاده خانم فوراً شوهرش رو شناخت و خواست از مخفیگاه بیرون بیاد که پیرمرد اجازه نداد. جوانها پشت میز نشستند و شاهزاده یک بار دیگه در حالی که لیبان نوشیدنی را بلند کرده بود گفت: به سلامتی همسر عزیزم که تا هست شاد زندگی کنه و نفرین به مادر سنگ دلش اگه باعث شد که پوست تلائیم بسوزه شاهزاده خانم دیگه نتونست تحمل کنه از پشت تابلو بیرون اومد و به سوی شوهرش دوید مرد فورا همسرش را شناخت و گفت یادت میاد به تو گفتم امروز منو لو خواهی داد حالا فهمیدی که راست میگفتم اما دیگه همه چیز تمام شد خوب گوش کن تلس من تا سه ماه دیگه ادامه خواهد داشت آیا قبول میکنی که تا اون موقع با من اینجا بمونی؟ شاهزاده خانم قبول کرد و به پیرمرد گفت به قصر برگرد و به پدر و مادرم بگو که من اینجا هستم. پدر و مادر شاهزاده خانم با شنیدن حرف‌های پیرمرد خیلی ناراحت شدند. اما خیلی زود سه ماه گذشت و شاهزاده برای همیشه تبدیل به انسان شد. آنها با هم به خانه برگشتند و با خوشحالی در کنار هم زندگی کردند.